اما نقطه مقابلشم اونایی که آشکار کردن این حقیقت را دست بریدن گفتن علی سر بریدن گفتن علی زندان کردن گفتن علی تبعید کردن گفتن علی شاعری شعر در مده علی میگفت تو کوچه های کوفه را میرفت در اوج خبقان ما آبیه گفتن چه میکنی؟ گفت چوبه اعدامم رو رو شونم گذاشتم هر جا میخوام بکارن و منو بالای این چوبه اعدام بالا ببرن تبعیدش کردن از تبعیدگاه شعری سرود و برای معاویه فرستاد شر دوبی اندم تداهی علی یا و رعوزا که فی یدا اندوی یا ما ابره در حتی تختلی مهجتی به حب علی یا حب و دین لا حب دنیا و شر الحب حب یکون علی دنیاوی یا ساغن لا منهم آبد من هم لا من ولا این شعر رو تو تبعیدگاه فرس... سروده فرستاده چی میگه؟ میگه منو آواره کردن تبعیدم کردن چرا؟ چون شعر در مده علی گفتم خیال کردن این برای من درد خانمان سوزیه به خدا غسم شما اگر منو زوب